در برنامه جدید از برنامه های عقیده در قرآن و سنت در خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم و خوبی است که در آغاز بفهمیم که عقیده در لغت چی منامیتا و در اصطلاح چی منامیتا و چرا عقیده اسلامی میگیم و چرا عقیده در قرآن و سنت میگیم اصلا دوستان عزیز کلمه عقد در زبان عربی به معنای ربط دادن بین دو چیز است. ارتباط دادن در بین دو چیز ها این دو چیز مادی باشه و یا معنوی. اگر ما یک تا را با تار دیگه گری میکنیم، امی گیری را در زبان عربی عقد میگن. عقد میگن. چرا که جه یک تار با تار دیگه چی شده؟ گریزه داشته است. از این خاطر خود کلمه عقد ارتباط یک چیز با چیز دیگه که مثل یک پیوان میته گریزه میشه. عقیده مثلا میگیم عقد نکاح. عقد نکاح چیز معنوی هست که یک انسان با انسان دیگه با هم یک جای ارتباط پیدا میکنند که این رابطه ازدواج است پس با عقد نکا ارتباط بین خانم و شوهر ارتباط به اساس ازدواج میشه از این خاطر عقد نکام میگن و شکل کلمه عقد به معنای یقین تصمیم عزم صلابت هم استعمال میشه وقتی میگیم عقد بی دو انسان با هم اتفاق میکنند با هم ارتباط پیدا میکنند این دو نفر خرید و فروش که یک نو رابطه هست بین دو کس در اینجا صورت میکن از خاطری عقد بیعه میگن و عقده بسیاری وقتا اما که در قلب پیدا میشه بستگیه که در قلب پیدا میشه مگه فلان شخص بسیار اقدمند است چون در قلب ازی یک نمه امو بدبینی ها جمع شدن و با هم گری خوردن و وقتی میگیم عقیده توحید یعنی چیزی که رابطه خالق با مخلوق مستحکم میسازد و قلب ازی مخلوق با خالق خود از طریق ارتباط می داشته باشه ای است معنای لغوی کلمه عقد یا عقیده که این کلمات به معنای ربط دادن، گری دادن، بستن یک چیز رو به شدت خوب سی بسته کردن یقین، تصمیم، عزم، صلابت و جزم این کلش معانی لغوی عقیده هست. عقیده قرآنی در اصلاح چی رو میگن؟ عقیده قرآنی در اصطلاحی ای است که انسان ایمان داشته باشد به وجود خالق متعال ایمان داشته باشد به وحدانیت الله جل جلوه در ذاتش و در صفاتش و در عبادتش و در قانونش دریم موحد باشد. و عقیده به آنچه که در قرآن به شکل اجمالی و تفصیلی ذکر شده و رسول الله صلی الله علیه وسلم ورا توزیع و تشریح کرده است ببینید اینجا ما و شما عقیده قرآنی را در اصطلاح چند نقطه را گفتیم نقطه اولش ایمان داشتن به وجود الله جل جلاله پس اساس عقیده اسلامی است که انسان به وجود خالق یکتا باور داشته باشه دومین نقطه است ای که این انسان که به وجود الله ایمان داشت ای مؤمن گفته نمیشه و عقیده از این عقیده توحید نیست و عقیده قرآنی نیست تا که به یگانگی الله جل جلوه در ذاتش و در صفاتش و در عبادتش و در قانونش عقیده نداشته باشه پس ای باور بکنه که الله جل, جل جلوه ذات یگانه هست صفات الله جل, جل جلوه است که مخصوص الله جل جلوه و ای صفات خالق هم به شکل توقیفی از قرآن عزیزم شان گرفته باشه همچنان یقین داشته باشه که عبادت الله جل جلوه هم در اینجا هم انسان موحد باشه که عبادت فقط به الله جل جلوه بکنم و به این شکل قانون الله جل جلوه رو یگانگی باور داشته باشه که کسی که صلاحیت داره و قدرت داره که حلال، حرام، جایز، نجایز، خوب و بد برای ما معرفی بکنه. چی حلال است و چی حرام است. چی جایز است و چی نجایز است. چی درست است و چی غلط است. چی خوب است و چی بد است. چی اخلاق است و چی بد اخلاق است. اینمی تمام اینمی قواعد و قوانین کی میتونه برای بشریت بیان بکنه ذاتی که او خالق یگانه هست پس کسانی که به عقیده توحید باور دارن اونا وحدانیت الله جل جل, جل را در امی چار بخش که در ذاتش در صفاتش در عبادتش و در قانونش و همچنان چی افعال مخصوص الله جل جل, جل, جل است که این شالا با در برنامه های بعدی بعدی تشریح تشریخات کردیم به قسم عقیده توحید عقیده است که آنچه که در قرآن عظیم آمده است او را به شکل اجمالی و تفصیلی ذکر شده و رسول الله صلی اللہ علیہ او را بیان کرده به آنچی آنچه که در قرآن عظیم آمده یک مسلمان وقت قرآن عظیم زیم و شان می به آنچه آن که در قرآن گفته شده به او ایمان می‌داشته باشه. ما ایمان داریم بگیم آمن تو بالله به با الله جل جلله. به خاطر ازی که قرآن بر ما ایمان به الله را با ملائکه ها، با کتاب های آسمانی، با پیامبرا، به روز قیامت، زنده شدن باد از مرگ و همچنان به ای که جن وجود داره به ای که شیطان کانه من الجن شیطان ابلیس از جنیات بود در بین ملائکه خدا قرار داده بود یعنی آنچه که در قرآن از مشان آمده خواه درباره ذات الله جل جلوس خدا خبری آمده درباره مخلوقات الله جل جل و مخلوقات الله جل جل هستند. وجود دارند جنیات مخلوقات الله جل جل و وجود دارند پرندهها حیوانات مخلوقات الله جل جل هستند به می شیطان بلی وجود داره شیطانای انسانی هست جنی هست پس انسان مسلمان با آنچه در قرآن ازی مشان آمده، با تمامی اینا خواه اینمی چیزهایی که در قرآن آمده، به شکل اجمالی ذکر شده باشه، تمام پیغمبر ما ایمان داریم، اجمالا و تفصیلی ذکر شده باشه که فلانی به فلانی نام موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، مادر علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه وقتی که به شکل تفصیلی ذکر شده بایی هم انسان ایمان داشته باشه یعنی هر چی که در قرآن آمده و گفته شده انسان به او ایمان داشته باشه و باور داشته باشه ایره عقیده قرآنی میگه و اینمی چیزی که در قرآن آمده و او رسول الله صاحب تشریح کرده توضیح کرده با آیت و با تشریح از انسان ایمان می داشته باشه و در اینمی قسم توقف میکنه به شکل توقیفی اینه که باز از دل خود نامای جدید برای پیغمبرها نامای جدید پیدا بکنه یا بره مثلا از تحریف شده نامهایی را که شاید نام واقعی باشه یا نباشه وارد هم بیاره داخل بکنه و از کتابای قصه هم چیزهایی را بیاره او را هم داخل کنه نه خیر بلکه آنچه که در قرآن آمده و رسول الله صلی اللہ علیہ و او را تشریح کرده به اونمو ا نقطه سیومی است که خود عقیده قرآنی که است عقیده توحید یا عقیده اسلامی را علمای اسلام بنامه های مختلف ذکر کرده که اگر مثلا عقیده اسلامی گفته میشه منظورش عقیده است که در قرآن و سنت است اگر عقیده توحید گفته میشه ای هم منظورش امی عقیده است که انسان مؤمن یک پرست مطابق قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی اللہ وسلم به او عمل میکنه او را میشناسه بعضی ها بنام علم اصول دین میگن، بعضی از ها به نام دپارتمنت اصول دین یا فاکولتی است مثلا که فاکلتی اصول دین پس منظور از او هم امی عقیده هست عقیده توحید اسلامی و بعضی علما علم ایمان میگن ایره او هم درست هست. بعضی از علما مثل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه هره دو بخش تقسیم کرده که یکی فقه اکبر است و یکی فقه اصغر است منظور از فقه اکبر اعتقادات است وقتی که انسان خود فقه به معنای دانش و فهم است وقتی که انسان علم اعتقادات یاد مگیر ای فقه اکبر است من یرید الله بهی خیرن یوفقیحو فی الدین وقتی که الله جلاله جل بر یک کس خیر بخواه باز او را فقیه در دین میگردنه. او باز در دین معلومات خوب میداشته باشه و وقتی که هر قدر انسان واقعات ها را فهمید با مو اندازه به طرف دین و دینداری انسان سوق میشه. پس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امی فقه در دینه به دو بخش تقسیم کرده. که یکی فقه اکبر است که او اعتقادات است و یکی فقه ازغر است که او احکام و معاملات است پس ما مسلمان ها ملفیت داریم که عقدی توحید عاقیده اسلامه به مو شکل که الله جل جلاله بر ما بیان کرده او به با مو شکل ما آ آ آ یاد میگیریم و میفامیم و مطابق از او زندگی ۴ ساعته خود ایار و ای است که انسان باز اقی درست می داشته باشه. اصول عقیده اسلامی چی هست؟ ای که اصول عقیده اسلامی کدام چیزها هست؟ سوال کردیم که اصول عقیده اسلامی چند است. عقیده اسلامی دارای شش اصل است آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الاخری و القدر خیره و شرده من الله تعالی و البعث بعد الموت انله اصل اول ایمان ایمان الله جل جلاله است پس اصل در عقیده توحیدی است که انسان وجود الله جل جلاله و به وحدانیت الله جل جلاله و به اقسام توحید توحید افعال توحيد و توحید صفات اسماء و صفات الله جل جل و توحید الوهیت که توحید عبادت است و توحید در بخش قانون تشریف و تقنین در تمام ازینا به ایمان داشته باشه پس ایمان داشتن به وجود الله جل جل جل به ذاتش و صفاتش و عباداتش ای جز اول اصول عقیده اسلام است اصل دوم در عقیده اسلامی ایمان ملائکه هاست. انسان مسلمان باید به با وجود ملائکه ها ایمان داشته باشه چقدر ملائکه هست؟ دیدادشان چقدر است؟ ما والله دقیق تعدادشان نمیفهمیم. و ما یعلم جنود ربک که لشکر الله جل جلاله را مگر خود الله جل, جل جل پس ما به تمام ملائکه های الله جل, جل جل ایمان داریم به شکلی اجمالی و به شکل تفصیلی الله جل جلاله نام های بعضی از ملائکه ها را برای ما بیان کرده جبریل و میکال میکایل علیه السلام، جبریل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام او نام های زنا نام های ملائکه ها که به شکل تفصیلی در قرآن و در حدیث صحیح امدن به اوام انسان ایمان می داشته باشه سمومی اصل ایمان ایمان به کتاب های الله جل جلاله جل ما ایمان داریم که مثلا از طرف الله جل جل به بر پیغمبرا کتاب های نازل شده و این کتابها ها و صحیفاتی که نازل شده بالای پیغمبران بکلش با کلش ایمان داریم تورات به موسی علیه السلام انجیل به عیسی علیه السلام زبور به داوود علیه السلام قرآن به محمد صلی الله علیه وسلم سلام تعدادی از صحیفاتی که بالای دیگر پیغمبران نازل شده به کل ایمان داریم به شکل اجمالی و تفصیلی و چون به اینا ما ایمان داریم بهی بهیم ایمان داریم که قرآن از میشان بر ما گفته که بعد از رفتن از این پیغمبرا در کتاب ها تحریف و تصرفای صورت گرفته پس ما به اصل همو کتاب که از طرف الله جل جلاله سرازی پیغمبر نازل شده ایمان داریم و ای کتابهای که تحریف شده یارم من حیث کتاب تحریف شده باور داریم که قرآن گفته که اینا تحریفات صورت گرفته است چارمین چیزی که مسلمان ایمان می داشته باشه است که یک انسان مسلمان از حضرت آدم علیه سلام تا محمد صلی الله علیه وسلم تمام پیغمبرایی که آمده به او یک انسان مسلمان ایمان می داشته باشه ما به با تمام پیغمبره ایمان داریم کل آمن بالله و ملائکته و کتوبه و رسول کلی ایمان پس پیغمبرایی که به شکل اجمالی بر ما گفته شده ما به او ایمان داریم و پیغمبرایی که بر ما به شکل تفصیلی گفته شده است که کدام پیغمبر بود در کجا آمده بود به او هم آنچه که در قرآن آمده به او ایمان داریم و یه ای اساسات ایمان ما را قرار میدن از این خطر هر کسی که مؤمن واقعی و به کتاب‌های الله جل جل ایمان داشته باشد، بدون شک به تمام پیغمبرا ایمان می داشته باشه و کسایی که میگه مثلاً ما ایمان داریم لاکن یکی از پیغمبرا را رد می کنه. ما چرا وقتی که به محمد صلهوهلم پیغمبر ما چرا به موسی علیهاسلام ایمان داریم و چرا به موسی علیه السلام و عیسی علیه اسلام ایمان داریم خاطر ازیکه کتاب ما کتاب الله جل جلاله بر ما گفته ما مجبور هستیم اگر ایمان نداشته باشیم به با عیسی علیه السلام که او پیغمبر الله بود و به موسی علیهاسلام که پیغمبر الله جل جلاله بود پس ما مسلمان گفته از ازی خاطر کسانی که از کتاب و از قرآن انکار میکنن و از نبوت نبی کریم صلی الله انکار میکنن یا در حقیقت مؤمن حقیقی و واقعی نیستن اینا خدا فریب میدن و خاطر ازی که اگر اینا واقعا به کتاب های آسمانی و به ما کتاب های تحریف شده ایمان میداشتن و ایمانشان حقیقی میبود پس به تمام پیغمبران ایمان میداشتن ازی خاطر کسی که یکی از پیغمبران را رد میکنه او باز مومن گفتن میشه و یا یکی از کتابا را رد میکنه ما بله ما به تورات ایمان داریم این توراتی که درس شما امروز است که دیششم های بر پیغمبرها هست ما به ایمان نداریم به خاطر ازی این تحریف شده هست قرآن بر ما خبر داده لكن با موسی علیه السلام و با کتابی که الله برش نازل کرده بود تورات و با اردوشی ما داریم هم با موسی علیه هم انبر کتابش بنجمین اصل از اصول عقیده اسلام ایمان به روز آخرت است ما مسلمانان ها به روز آخرت ایمان داریم ای که در روز آخرت مثلا انسان بعد از ای که آخرتش هست قبر شروع میشه به قبر و به عذاب قبر به سکرات سکرات الموت به عذاب قبر به زنده شدن بعد از مرگ، به سوال منکر و نکیر به میدان حشر به میزان به حساب دفتر اعمال با تمام از اینا ما و کل از ایمان داریم تمام از اینا در قرآن عظیم شان آمده از ما که آن چی که در قرآن عظیم ذکر شده یک انسان مسلمان که عقیده مطابق قرآن و سنت داره و کل از و باور داره ما از سکرات الموت تا زندگی در قبر زنده شدن در قبر سوال منکر و نکیر بعد از روز محشر، بالبعثی بدل ماد، با کل از اینا با تمام از اینا ایمان داریم. آنچه که در روز آخرت است، حساب، میزان، سرات، قنطره جنت، دوزخ، با تمام از اینا ایمان داریم. چرا که کل از اینا در قرآن از شان ذکر شدن. و ششمی اصل از اصول ایمان و عقیدی یک مسلمان، ایمان به ای که اندازه خیر و شر از جانب الله جلد است. الله جل جله بر ما اندازه کرده که چی خیر است و اندازه کرده که چی شر است و ای که الله جل جله چی خوب است چی خراب است ایره بر ما بیان کرده یبه به ای هم ایمان داریم و به ای هم ایمان داریم که الله جل جلو مقدرات نوشته کرده به قضای الهی و به قدر الهی به تمام ازنا ایمان داریم هم به شکل اجمالی و هم به شکل تفصیلی آن چیزی که در قرآن ذکر شده و رسول الله سم بیان داشته و کل از ایمان داریم موضوع دیگه ای است که وقتی ما از این اساسات ششگاری ایمان صحبت میکنیم از کجا گرفته شده؟ طبعا چون درس ما عقیده از قرآن و سنت صحیحه رسول الله و سلم است از این خاطر ما اونمو احادیث صحیحه و اونمو آیت قرآنی را من حيث الدليل بيش ما يقدر دليل از القرآن زي مشاهن إياه صعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر الله جل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يعني إن نيتي ناسك شما ما رويت أنا بترى في مغرب البر لكن نيتيه حقيقية ثقة أكبر و چی هست من آمن بالله کسی ایمان داشته باشه به با الله جل جلاله و الیوم الاخر و روز آخرت ایمان داشته باشه و الملائکه به ملائکه ها ایمان داشته باشه و به کتاب نازل شده الله جل جلاله و النبی و به پیغمبرای الله جل جلاله با تمام از ایمان داشته باشه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين سورة البقرة آية 177 أفترض الله جل جل هو در آية ديجا شو ميجا إن كل شيء خلقناه بقدر فس ما حمش إذا به قدر به مو اندازه که الله او را اندازه کرده پس این اینجا ایمان به چی شد؟ به قدر شد سوری القمر آیت چلون در حدیث شریف که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه و حضرت ابو هریره رضی الله تعالی بر روایت بخاری و مسلم روایت کردن که هنگامی که جبرایل علیه السلام آمد بشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم از پیغمبر سم کرد که مل ایمان و ایمان چی هست؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم برش گفت بالله وملائكته ملائکاتیه و واليوم الآخر والقدر و بالقدر خيره وشره. شره پس نبی کریم بالله یک تو ایمان الله جل جلاله و ملائکاتیه الله جل جلاله و کتبیه و الله جل جلاله و رسله با پیانبران الله جل جل هم و الیام الاخر و ایمان داشته باشی روز قیامت بروز آخرت و تؤمنه و ایمان داشته باشی بالقدر خیلی و شره با قدر یا اندازه خیر و شرکی یا از جانب الله جل جلوست است اینال ای اصول داره یک سلسله از فروعات است و تفصیلات است که انشاء الله تعالی باز در درس بعدی درباره از او صحبت خواهد کردیم دوستانی عزیز با درزی که مصادر عقیده را فامیدیم. دیم سره ای که بین پرسان بکنیم از خود که انسان مسلمان باید چی باید بکنه که عقیده را از نگاه لغویش بفهمه، از نگاه استلاحیش بفهمه. که عقیده چی را میگن و عقیده توحید و عقیده قرآنی کدام عقیده هست و وقتی که را فهمید انسان باید اصول ششگانه ایمان بسیار دقیق بفهمه و سر هر کدام از اصول آنچه که قرآن گفته و آنچه که احادیث الله هم گفته او را بفهمه و الله تعالی ما در برنامه های بعدی سر از این مسائل مفصلا صحبت خواد کردیم و همچنان خاطر برتان گفتیم که این عقیده اسلامی چی منزلت و مقام داره و این عقیده اسلامی از کدام مصادر گرفته شده؟ این هم سوال است که مطرح میشه. پس ای که منزلت عقیده اسلامی چی مقام داره؟ عقیده اسلامی و چی منزلتی داره و چی اهمیتی داره؟ و همشان این که عقیده اسلامی را مسادرش چی هست، از کجا باید انسان عقیده خدا بگیرن، ایره انشاء الله تعالی در برنامه بعدی باز در خدمت شما دوستان عزیز قرار خواهیم داشت، دوستان عزیز فهمیدن عقیده اسلامی برای یک مسلمان بسیار مهم است، وظیفه هر مسلمان است که عقیده توحید بفام خودش، و در نشر و پخش ازی و رساندن عزیز به دیگه مسلمان سعی و تلاش بکنه، زیرا عقیده توحید وسیله سیلیز بر نجات وسیله بر رفتن به جنات وسیله بر سعادت دنیا و آخرت که الله جل جل هم ما و شما عقیده توحید نصیب بکنه و الله جل جل هم و شما را در روز قیامت در جمله موحدین حشر بکنه سبحانک اللهم و اشهد اشهدو ان لا اله الا الله و واتوب و الیک وسلام علیکم و الله و